سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی موضوع سخندانی تزکیه نفس با توجه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام جلسه هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لا ما بقیت الله فل الارزین اللهم انت سلام و منك سلام و لك سلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي و رحمت الله و بركاته السلام على الأئمة الهدين المهديين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 السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام علی بن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام حسن علی الحسن ابن علي الزکی الاسکری، السلام علی الهجت ابن الحسن القائم. عليك ال. يا مولاي يا امير المؤمنين يا اول مظلوم قصب حقه يا سیدنا و مولانا توجهنا و وتوسلنا و تبصلنا به الله و قدام نات حاجاتنا یا وجوه حنده الله اشفلنا الله قال الله تعالى فی کتابه و نفس و ما فألحمها فجورها و قد افلح من زكاها و قد خواب من دستاها خب با توجه به آیاتی که چند شبی است در خصوصش بحث کنیم رستگاری صلاح و نجات انسان را قرآن کریم در تزکیه نفس معرفی فرموده است قد افلهم من زکا در جای دیگر قرآن قد افلح المؤمنون پس می توانیم استنباد کنیم که مؤمن از نظر قرآن کریم اون کس است که تزکیه نفس داشته باشد اما تذکیه نفس از نظر لغت به معنی رشد و نموی که نفس می تواند پیدا کند که لازمه <تصفيق> که لازمه ای این رشد و نموه به پاکسازی نفس از ناب سامانی ها و آلودگی هاست اگر در تزکیه نفس بحث آلودگی ها را زدودن مطرح میکنند بدین جهت که اگر بخواهیم مثلا یک دانه گیاه را رشتش بدهیم اون عواملی که مانع رشد است مثلا آب جوش به پای این دانه ریختن یا موانعی بین ریشه دانه و خاک ایجاد کردن یا موانعی که مانع از رسیدن نور و هوا به این شاخه و ساقه از خاک خارج شده وجود دارد اینها را بزدایم اینها را از بین ببریم این از بین بردن ابزار است وسیله است تا در اثر زدودن این موانع، اون رشد لازمی را که این دانه می تواند پیدا کند بیابد نفس انسان می به اونجا برسد که در طول شبه های گذشته غیر از شبه های قدر از آیات قرآن استشهاد کردیم که انسان به سمت پروردگار حرکت میکنن کدهن سمولاوی انکه کادهن ربک کدهن سمولاوی انسان حرکت تو و این پیشرفت تو الاربک به سوی خداست کد تا اون گونه حرکت و تلاشی که سملاقی به لغای حق نائل شوید که این بحثش گذشت اما بحث در این بود که اگر نفس می تواند این روش را پیدا کند تا بدون جا برسد چگونه ما بتوانیم زمینه تعالی نفس را فراهم کنیم همان گونه که برای رشد گیاه ما نیرو صرف میکنیم برای رشد حیوان نیرو صرف میکنیم برای رشد جسمی و بدنیمون ما این تلاش را داریم و راه لازم را شناسایی میکنیم آیا نفس ما که میتواند علی حرکت کند س ملاقی براش مطرح باشد پس این به چه صورت و چگونه؟ بحثی که در طی شبهای گذشته به خصوص شب‌های قدر داشتیم ار کردم بزرگترین جنبه ارزشی نفس که در اثر اون جنبه ما می توانیم این حرکات را بیابیم و یا در اثر آلوده کردن اون جنبه در جا بزنیم و نابود شویم اون قلب است اون دلی است که چون نفس داریم دل داریم و قلب داریم ادعای بنده این شد که اگر دل جای خدا و اولیای الهی شود این دل سالم است دل سالم رشد می کند و اگر دل جای حب خدا و حب اولیای الهی که در این ایام مظهرش امیرالمؤمنین علیه السلام است حب علی و آل علی در این دل جا نفس آلوده است نفس آلوده تکامل نمی یابد حالا ببینیم امشب چقدر فرصت اجازه میده با آیات و روایات و استدلال به این بحث بپردازیم که انشاءالله ادامش در شبهای آینده پیگیری خواهد شد ادعای ما فعلا این است که این سرمایه بزرگ به نام دل اگر جای حب علی و عال علی که مظهر خدا هستند نشد حب خدا نمی شود و اگر حب خدا نشد همان گونه که یک بذر اگر در آب جوش انداختید و جوشون قدرت رویشش را گرفتهی هرچه آب و مواد غذایی لازم و سموم برای آفت زدایی جهت رشد این دانه به کار ببرید دانه رشد نمی کند دلی که این ارزش در او جا نگرفته است چه نماز بخواند هرچه روزه بگیرد هرچه حج رود و هرچه سایر عبادات دینی را داشته باشد این بذری است که قدرت رویشش مرده است آیا تعسب است یا استدلال نقلی و عقلی براش ما ارائه میکنیم انایت بفرمایید اصولا خداوند این خاصیت تأثیر پذیری و تأثیر گذاری را در عالم هستی قرار داده است که وقتی موجودات در کنار هم قرار میگیرند به اقتضای درجه فاعلیت و منفعلیت که پریشد یه اشاره کردم تأثیر ببخشند و تأثیر بپذیرم من در جمادات عرض می کنم آتش یک وجوده که خدا آفریده است اثری دارد آتش که این شیعه که که است ندارد آب هم که یک جمادی جمادیست جمادی به معنی فلسفیش یعنی بیجان یعنی غیر زنده نه به معنی علمی یعنی جامد و مایه جمادی نه جامد این شیء مایع که بیجانه این پارچه که بیجانه و این میکروفون که بیجانه آتش هم که بیجانه یک سری آثار را آتش داره آب داره این پارچه داره و این میکروب زغال هم یک شیء جمادی است وقتی زغال را در کنار آب قرار میدهم آتش نمیشود نورانی نمیگردد و شعله نمیده. زغال رو در این پارچه بپیچم باز هم همینطور ولی وقتی آتشی شعله بره زغالی رو در مجاورت این آتش قرار میدم آتش اثرش است و حرارت دهی زغال در مجاورت آتش قرار بگیرد میبینیم کم کم خودش تبدیل میشه به یک پارچه آتش و خودش میشه نور همان گونه که این آتش روشنی میبخشد این زغالی که در اثر مجاورت آتش کسب آتش شد خودش هم هم حرارت میده هم نورانیت سنگ هم شیء است این سنگ رو در آتش قرار بدم گرم میشه حرارت پیدا میکنه ولی مثل زغال نه نه انجوری نورانی میشود و نه مثل زغال انقدر میسوزد و نور میدهد که خاکستر شود پس خاصیت انفعالی و خاصیت فاعلی در اشیاء عالم مختلفه این در شیء جمادی در شیء نباتی ارز کنم اگر شما یک گیاه رو در نظر بگیرید گله یا درخت میوه می <تصفح> میتواند گله های زیبا بدهد یا میوه بسیار پرخاصیت به شما بده اما در مجاورت چی قرار بگیره؟ آب باشد؟ خاک مناسب باشد؟ خاکی که نمک توش پره خاکی که انقدر رسه زخیم سفته که این بذر میخواد ریشه بدبانه امکان نفوذ در او نیست مجاورت این بذر با اون خاک گل زیبا و درخت پرمیوه نمیدهد اما مجاورت این بذر با اون خاک با اون مواد غذایی با اون نور میشه یک درخت شاداب به سرکشیده بالا آمده بالاتر از همه اینها انسان که سری میخوام رد بشم انسان از نظر جنبه بدنی این گوشت و پوست و استخان در کدوم هوا قرار بگیره چه نوع غذا به او برسد و در چه محیطی زیست کند آیا محیطی که آلوده است از نظر هوا و مواد غذایی مسموم کننده به این بدن می رسد تا بدنی که در یک محیطی که از نظر آب و هوا و غذا بهداشتی و سالم است رشد و نمو و اون شادابی این دو بدن قابل مقایسه است این در عالم ماده است چون بدن ماده است هوای مادی قضای مادی، آب مادی، چون بذر گیاه ماده است، خاک ماده، هوای ماده و آب مادی، <تصفح> چون زغال ماده است، آتش مادی، اما دل که ماده نیست، نفس که ماده نیست، اگر نفس بر مبنای غیر ماده بودن مجاورت غیر مادی میخواد لذا این دل که از یک مقوله بالاتر است که به تعبیر قرآن کریم دلی که از نفس است تا به این جا می رسد انشأناه انشعناه و خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین برای این بعد نفسانی مطرح می شود که خدا و نفس و ما سواها توگنده بر این نفس میخورد اون بعده عظیم نفسی که دل است، این در چه فضای آلوده ای قرار بگیرد یا در چه فضای مناسب مثل جسم که در چه فضا الان بدن من و شما در این حسینیه اگر هوا به شدت آلوده شد دود سیگار فراوانی بر فرض در این فضا پر شد امکان تحویم نبود یه <تصفيق> تأثیری روی جسم ما میگذاره. حال دل من در چه فضایی قرار بگیره اینو بهش میگن حب حب یعنی دل بستگی یعنی دلو در کنار چه می نشانی؟ اگر دل را بستم به ایکس به عنوان یک عنوان کلی یعنی تعلقات مادی یعنی وابستگی های دنیاوی. یعنی عرضش پس مادی مجاور دل مجالس دل همنشین دل و اونی که در کنارش داره قرار میگیره ماده است ماده به اندازه ماده اثر داره لذا این دل تمام ارزشش در حد مادیگاه است اما اگر این دل به خدا بسته شد آیا در اعمال اختیاری نه اعمال جبری اعمال جبری رو کاری ندارم در اعمال اختیاری علتی که اعمال ما مختلف می شود چیست انتخاب درون هست یا نه برون غرون چشمم دوخته میشه زبانم به حرکت در میاد دستم حرکت میکنه پام گامی بر می داره این حرکت بیرونیه عامل درونی که باعث می شود در برون این گونه انعکاس بیابد نحوه خصوصیات دل من است ما درون رابنگری و حال را می برون را بنگریم و قال را اینو دو جور معنی میکنم. کنم یه معنی غلط آنانی که این شعر رو نفهمیدن معنی کردن میگویم یعنی دل پاک باشد دیگه عمل نمیخواد دیگه تلاش نمیخواد دیگه ابا... کم چه زده قطعاً این معنا غلطه هر کی این شعر اینجوری معنی کرده شعر رو نفهمیده نه این شعر میخواد اینو بگه اگر کسی نماز میخواند، ولی دلش برای خدا نیست این طبق آیه شریفه قرآن ویلون للمصلی این نماز میخواند، صلات رکوع میده هم داره لباسشم پاکه مکانش قصبی رو به قبله واق ساده درسته ذکرش هم درسته اما ریاست ریا مال دل مال عملی نیست مال یعنی این حرکت رکوع درست ولی برای ریا ریا مربوط به قلب است اینو قرآن میگه ویل للمسلین وای بر این جور نمازگذار پس از دل باید شروع کرد اگر دل برای خدا شد ا اگر ریا معنا پیدا میکنه اجازه بدید من یه مثال بزنم اینجا. آقا به بنده بگم یا به شما پنج تا وچه در سن سه ماه چهار ماه پنج ماه توی محده کودکن. مربیشون مشکلی پیدا کرده رفته اینا سه چهار ساعت بی سرپستن مربی ندارن تش بیاری چه پنج ساعت. این کلاس رو اداره بکنید این مهد رو اداره بکنید شما الان میرید تو این کلاس به ذهنتون میگذره جست بگیرید برای این بچه‌ها اطلاعاتتون رو به رخشون بکشید آقا تحصیلات بنده چیه مدرک تحصیلی من چیه کدوم ها برای من دعوتنامه دادن کدوم علما راجع به من چی گفتن من چنینم نیمه بچه... اصلا به ذهن شما میاد چرا نمیاد برای این بچه چه کار میتونه بکنه اول اینکه اگر فرض کنید فهمید این بفهمه اینا رو به چه اثری چون امید اثر از او نداری، او رو منشع اثر برای خودت نمیبینی اینو در درون فهمیده ای وقتی فهمیده ای پیش شما مطرح نیست لذا میگه ای تفلکی ها الان به سرپرستی من دارن من با کمال محبت سرپرستی میکنم کنم مربی بیا تحویل بدم برم اگر اینجا یه نفر این پنجا تا بچه سه ماهه چار ماهه رو نشنده برای شو میگه آقایون بنده مدرک تحصیلی می حالا پسر بچه ها باشن. این ب... تفلک ها کودکان مدرک من این هستا دیگران می خندن یا نه انسانی که در دلش خدا رفته است غیر خدا را بچه می بینه خوب رو این نکته دقت کنیم نه توهینه به بقیه استا اشتباه نشه بندگان خدا همه محترمن همه محترم دیشب بود تو این جلسه به رفقای اینجا گفتم حدیثیست که معصوم می خداوند چند چیز را در چند چیز مخفی کرده به چه رازی یک شب قدرشو رو در بین چند شب مخفی کرده تا این که مردم چند شب راز نیاز و وگر میتونست که این یه شبه اونم اون فاعت معین همون ساعت بیا میگه نه مخفی کرده در طور چند شب بندگان برجستش رو در میان بندگان مخفی کرده تا شما همه بندگان رو به چشم عظمت نگاه کنید، تحقیر نکنید. اون اشتباه نشه. ولی در مقام مقایسه میگه ازمت الامور ترم تر بگیده لا مؤثر فی الوجود الا الله موحد چو ذر ای در برش و یا تیغ هندی نهی بر سرش امید و حراسش نباشد به کس بر این از مبنای توحید و بس چرا؟ چون در دل خدا داره وقتی در دل خدا آمد این میشه حب خدا حب خدا که شد میگه من دلم رو به خدا دادم دل رو که به خدا دادم آقا تمام جمعیت کره زمین بیان به من بگن تو خوبی ولی من بین خود و خدا میدونم که بدم خوشحال اینجا که مردم بهده میگن یا اگر دلم زنده باشه تنها که یه گوشه میشینم میگم خدا یا کم نغبی هستر تا چه بدیایی منو تو پرده روش گذاشتی و نذاشتی مردم بفهمن وای اگر تو بخوای پرده رو کنار بزنی اون وقت مردم میفهمن من کیم تو که میدونی من کیم این مغرور نمیشه حالا اگر بین خود و خدا حسابش پاک باشه خوب باشه همه مردم تکذیبش کنن همه قهر کنن همه پشت به او بدن همه پشت به او کنن این انسان درگیر میشه در یا سرابان نشود تیره به سیل آرد که برنجد تونوکاب است هنوز شیشه دلان راست بیم سنگ حوادست سخر محابا ز سیل و سنگ ندارد چرا چون دل متصل شده به او دل که متصل شد در اثر این اتصال برگردیم به مثال پریشب این دل آب با توش بیاد آب لجن زده آب آلوده آب کثیف یک زمان کاری میکنه یک کمی تهنشین بشه اما شستشو نشده از دل او لجنات ته این ظرف منده سهلا با یه مقدار گرگه با یه مقدار دعا با یه مقدار توسل یه مقدار اینا نشست اما زدوده نشده این منتظر یک سحنه تحریک گناه براشه اون صحنه که اومد اون عامل دوباره پا این تو تا پا گذاشت که زیرش لجن پنج چهار سان 20 سانت نشسته دو متر روش آبه پات زدی زیر دوباره لجن میاد رو بعضی وقتا من در خودم میبینم تو حرم امام رضا میرم سوزی گدازی عشقی آهی مثل که پیدا شد دوباره میام یه هفته بعد یه هم نشینه بعد یه کتاب بعد یه مجله ناجور یه فیلم ناجور خودم میفهمم که دنیای درونم رو دوباره لجن داره میگیره این شسته نشده چه کار کنم آقا این آب لجن زده است؟ شما یه مقدار آب صافی بریزی بیاد روش رو بگیره لجناتش نشسته نه جیوه دریز توش جیوه که ریخته میره پایین اونا رو میریده بیرون وقتی شد سر رفت بقیه آبا اونی که توش مونده جیوه است آنی را که خدا ائمه گفته که الان عرض میکنم و عقلم اثبات میکنه میاد تو دل دیگه نمیذاره چیز دیگه توش بره حب خدا یا اونهاییست که خدا دوستش داره اگر اونو اومد دیگه چیز دیگه اونجا جا پیدا نمی کنه. یک کمی اجازه بدید استدلال کنم فقط از نظر شرعی یک آیه امشب می خونم دو سه فراز از مناجات محبین امام سجاد علیه السلام که امشب هم شبه مناجاته اصلاً به احتمال قوی بر مبنای روایات شب قدر شدی که بیشتر عیمه تحکید کردن تا اون حد که امام صادق علیه السلام آب میپاشیدن به صورت کم سن نسالاشون که خوابشون نبره بیدار بشینن سذیلت اون شب رو دریابن شبم شب مناجاته من ربط میدم به یه که از مناجات محبین امام صدق علیه السلام و یک قضیه در رابطه یه محب علی که وقتی محب میشه به کجا میرسه یه کمی حوصله بفرمایید ببینید خب گفتیم دلبستگی به اقتضای درجه فهمی که ما داریم دلبسته میشیم دیگه پریشب اینو عرض کردم بعضی از جوونا پرسیدن که شما گفتید خب دائر مدار معرفت اینو توضیح ندارید بله من سردرخت شدم حالا عرض میکنم چند شب دیگر انشالله خواهم گفت خب دائر مدار معرفت یعنی شما بر مبنای محبوب من سطح معرفته من میتونه تشکیس بدید یا نه من چیه دوست دارم به اندازه اون دوست داشتنم میتونید متوجه بشید که بنده فهمم چیه این از قرآن براتون بگم سوره حدید آیه بیست اعلمون اعلمون بدانید توجه پیدا کنید انم الحیات الدنیا لعبون ولحبون و و تفاخر و ت... زینتون و تفاخر و تکاسران فل اموال و ال اولاد که مثل غیسین عجبل کفار نباطه سمت یهیجو فتراهو مسره مسران یکونو ختاما و فل عذابون شدید و مغفرتون من الله و رزوانون و مل حیات الدنیا الا مطاع القرور شئیلی آیه دقیق و زیبا فرصت زیغه اینو باید مفصل انشاءالله تو بحثای شبای جمعه من درسیم بحث کنیم ببینید بدانید انمال حیات دنیا، انما نماز در عربی یا انما چی رو میرسونه؟ خسرو این از جزین نیستا خدا داره اینجوری با ما عرف میزنه فقط این استا غیر از این نمیتونه باشه حیات دنیاوی یعنی اگر ما همین دنیا رو ببینیم وان که حالی دید و فردا را ندید وان که کپ را دید و دریا را ندید یعلمون از من الحیات دنیا و هم ان الاخرت هم هم غافلون تو این وادی بیاد اینا چیه؟ لعبون یک بازیه یعنی بچه دو ساله، سه ساله، چهار ساله، هشت ساله، نه ساله، ده ساله خبش به تمام آرمانش بازی و اسباب بازی لذا اگر شما بهش بگید درس بخون اسباب بازی می‌خرم این درسو حاضر کن بعدش با هم بازی می‌کنیم خیلی هم خوشحاله چون سطحش در سطح بازیه اما یه کمی سن میاد بالاتر نوجوان میشه جوان میشه از لعب میگذره مرحله دوم لحظه لحظ چیه هوسرانی آیا در زندگی دنیا همانطوری که یک بچه به بازی دل می‌بندد و عاشق بازی است یک نوجوان یا یک جوان اگه فقط در حد دنیا بخواد باشه به چی دل خوش می‌کنه حوسرانی و شهوترانی دوست می‌دارد ارضای شهوت کند و جنبه‌های شهوانی خودش رو پاسخ بده پس دلبستگیش در این حده سوم و زینتون و تفاخرون بینکم میاد یه کمی به سوی میان سالی دیگه اون بازی بچگانه تموم شد دیگه حالا یه سی و پنج ساله یه 40 ساله بگیم بیایم اللا بازی کنیم یه دیگه حوصلش رو اون عوصرانی با اون معنی که برای یک نوجوان جوان دیگه برای او هم خیلی مطرح نیست اما دکور ساختمونم رو عوض کنم، مدل اتومبیل‌مو عوض کنم، فرشامو نو کنم، ساختمون قشنگ قشنگتری سازم آیا اینا دست بر می‌داره؟ دلبستگی در این وادی اینم میاد یه مقداری بالاتر کم کم خسته میشه، زده میشه. به چی؟ و تکا سرون فل اموال و الاولاد. زیاد طلبی مال عشیره من، قبیله من، فرزندان من ما انقدیم، ما قبیله من، تعدادشون بیشتره فامیل ما گردن کلوفتره وقت پسنداز ما حتی میکوشد بر اساس مالندوزی 80 سالشه، 90 سالشه بازم ورق میزنه ببینه که چقدر پسنداز این ماهش در ها بیشتر شده آیا اینا بر مبنای حیات دنیا اگر باشه هست یا نه؟ پس این چهار وابستگی در حد دنیاوی این که حافظ میگه من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یک سره بر هرچه که هست اشاره به این چهار مرحله هست خوب اجازه بدید من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق وضو وقتی انسان می سازه این شبا خیلی ادم حال این عرفا رو نداره باید بریم تو دو آو مناجات اما چه بکنم مقدمه اون حرفا مجبورم یک کمی یک کمی حسله به انسان وقتی میخواد بیاد نماز بخاند باید وضوع بکره وضو، تطهیره تهارته این تهارت غیر تهارت جسمانی ظاهریه یعنی یه مقدار آمادگی روحی چرا؟ چون اگر منظور تهارت جسمانی بود اگر کسی هم ممرفته شست و شو کرده با عالی ترین شامپوی کره زمین خودش شدسته و با معتر ترین کره زمین وضوع بگیره بگیری یا نه خود خب باید بگیره. بگیری ایه حساب دیگه ای داره یک رمز تحارته خب حالا وضوع گرفت لازمه اش اینه که نماز با تکبیرت و لحرام شروع بشه همونطوری که ازان با الله اکبر الله شروع میشه لا اله الا الله الله تموم میشه نماز هم با الله اکبر تکبیرت الاحرام شروع میشه السلام علیکم و رحمت الله و برکات و الله اکبر این تکبیرت الاحرام که باید بگیم الله اکبر میگن مستحب دست رو بیاریم بالا و بگیم الله اکبر یعنی هر چی غیر خداست انداختن پشت سر چرا چون الله اکبر پوله الله بزرگتره مقام الله بزرگتره الان یک معامله کذاییست نه چنین و چنان دارد نه من گذاشتم کنار حالا میخوام بیام از چشمه عشق وضوع بگیرم اشق یعنی چی؟ اشق اگر به معنی لغوی بگیریم اینجا ما کاری بش نداریم عشقه گل عشقه اونی که از بیرون وابستگی داره خب از درون وابسته است اوج محبت رو بهش میگن عشق من هموندم که وضوع ساختم از چشمه عشق یعنی اونه در دل بگیم بالا رفت که غیر از خدا در دل من هیچی راه پیدا نمیکنه. چهار تکبیر زدم یک سره بر هر کرد به من میگن بازی میگم من وقتشو ندارم به من میگن هوسرانی میگم حالشو ندارم میگن تکاثر در اموال و اولاد و زینت و تفاخر میگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقارا بلند از آشیانه چرا؟ چون در دل اومده وقتی او در دل اومده چیز دیگه راه پیدانه میکنه اما این اما رو دقت کنید خدا میگه اگر میخواید من تو دل شما برم باید مظاهری که توی دنیا قرار دادم اونا رو ببرید تو دلتون اینا رو نبرید من نیومدم تو دل شما میخوادیم مظاهرشو در این عالم به ما نشون بده این مظاهر کیه؟ ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر مظهر خداست علی نمیگم خداست بد برداشت نکنی مظهر خدا یعنی عظمت خدا رحمت خدا لطف خدا انایت خدا قدرت خدا، قهر خدا، عدل خدا به اندازه که در این عالم میتواند تجلی کند در علی و آل علی شما ببینید خب اون کسی که دل میخواد به خدا بده میگه علی شناختم من به خدا قسم خدا را میتونه غیر از این باشه حالا اول اجازه بدید اینجا جای بحث داره من ببینم وقت چقدر میشه من از مناجات محبین امام سجاد علیه السلام یه دوستی کش رو بخونم الهی منزل لذی زاغ حلاوت محبتک فرام منک بدل الهی خدای من منزل لذی چه کسی زاق حلاوت محبت محبتک حلاوت شیرینی محبت تو را ای زائغش کشیده باشه فرام بدلا و راضی بشه غیرتو کس دیگر رو دوست داره چه کسی حاضر میشه جای خدا کس دیگر رو قرار بده حلاوت محبت خدا رو نششید اجازه بدید باید همین جا من افتدلال کنم یک کمی آقا شما نور را چرا دوست دارید؟ دوست داریم دیگه نور رو دوست داریم. برای اینکه تاریکی رو میبره. خب اگر کسی عاقل بود، دقیق بود، نور منهای چراغ چیه؟ هیچ. وجود نور، بقای نور، شدت نور، ضعف نور مال اون مبدأ نور هست نه؟ کارخونه یا چراغ؟ اگر کارخونه تولید کننده برق نباشه که برق نیست کسی که برق را منهای کارخونه برق دل میبنده این سطحی نگر است، امقی نگر نیست قبوله یا نه خب کل جهان مهر پدری مهر مادری تمام اون که در دنیاست وابسته به خدا هست یا نه وقتی وابسته به خدا اون کسی که سر چشم را ببیند آیا به این رگه های باری که پایین ترده خوش میکنه یا به سرچشمه لذا امام سجاد علیه السلام می منزل من ذل لذی زاقه فرام محبتک بدلا و من الذی لذی انسه به قربکه سبتقه انکه سولا و چه کسیست اون کسی که انس گرفت خو گرفت به قرب تو به نزدیکی تو پس از تو خود رو بگردونه یعنی انسان وقتی یه ارزشی رو شناخت، ببینی در همین مسئله های دنیایی بنده ارزو کنم میگه دلم دیگه بسته شد بنده رو ببرن توی مجلس. یک شخصی یک عالم ربانی یک چهره معنوی یک انسان الهی که بنده سالها این درون در, در میزدم اون بنده خدا رو پیدا کنم حالا پیدا کردم من میگه یک ساعت بیشتر وقت نمیدم. این یه ساعت من خدمتیشون هستم، مطالبی از ایشون میشنبم. بعد که میام بیرون، آیا هی برمیگردم اون دم رو نگاه میکنم یا نه؟ هی برمیگردم تو اون دم در میشینم ببینم به دیگران وقت داده برن تو، حالا که وقت داده منم از توفیل اونها یواشکی از اینجا برم تو، منم چند لحظه بشینم. اونایی که خدمت امام زمان علیه السلام در دوران غیبت رسیدن، بعد از تشرفشون یه آتیش پیدا شد کرد. یک انقلاب درونی و روحی دیگری دارند چرا؟ آخه او کشیده آخه او متوجه شده آخه او یه دستی به سرش کشیدن حالا این تشبیه رو یک بار من تو این جلسه کردم بذارید این شبم جاشه بگم و وقت در ارتباط با خدا و امام زمان و امیر به این نکته توجه کنیم آقا کسی در یک تناگاه جنگی متولد شده سا اصطاپ ندیده جنگل ندیده آبشار ندیده سر توجه اینا نداری چیه تو پناگاه متولد شده سی سال زندگی کرده تمام این مدت تو پناگاه جنگیه به او بگو آفتاب او چی میگه چیه خوردنیه یا پوشیدنی به او بگو آبشار و جنگل چی میگه آقای این چی داره میگه ندیداخه اما من و شمایی که تو جنگل بودیم آبشار رو, رو دیدیم آفتاب رو دیدیم خاصیت رو دیدیم حالا دو سال توی پناهگاه داریم زندگی میکنیم زیر زمین یه روز که سوراخی پیدا میشه از سخت از این آفتاب یک شعاعی میاد تو یه دفعه میگه بیاید بیات بیات چه میگن راه کن آفتاب شعاع آفتاب چجوری آه از دل میکشید کی میشه از این پناهگاه بیایم بیرون کی میشه بیرون بشینیم این آفتاب رو ببینیم اونایی که نور ولایت بر قلبشون تاویده بعد که سرگرم مشغله های دنیایی هم هستن گاه گاهی بیاد اون دریچه ها که می میگن کی میشه من این قالب مادی رو بشکنم توجه با اون معنا لذا امام سجاد علیه السلام می اون کسی که اون تو گرفت به قرب تو معنوز شد این مگه می تونه کس دیگر دیگه عوض کنه جات بنشونه؟ الهی فجعنا ممنست فیتهو لقرب که و که و اخلسته لودک و محبتک الهی خدای من فجعلنا قرار بده مرا ممن از کسانی که استفیته تو درگزیدی اونا رو انتخاب کردی لقربک برای قربت و برای دوستیت و اخلسته لودک و محبتک و خالصش کردی اینها را برای ود مودت و محبت خودت. اینجا یک سوال بنده بگم وقت داره میگذره وارد قسمت از تعمیر بشم بیشتر. این مقدمه مفصل راجب خدا اون وقت خدا تو قرآن به پیغمبرش میگه اگه میخوای مردم محب من بشن بگو باید محب علی بشه. بگو باید محب زهرا بشه. خدا گفته. حالا میگم بحثش میکنم خیلی چشورده و گذرا البته. دقت بفرمایید. <تصف> <تصف> اگر بناست دل وابسته شود میگه خدا یا فجعل نا تو قرار بده منو از اونایی که جدا کردی محبت تو اونا دادی منو برای قرب خودت مگه خدا تبعیض قائل میشه بین بندگانش خدا همه بندگانش رو دوست داره پس چه امام سجاد علیه السلام میگه دو مناجات مال نصف شبه مال اون عشقه شبانه است تو اون دل شب تو اون خلوت تو اون راز و خدایا تو منو انتخاب کن ببر تو اون جمع خصوصیات بنشون بلا تشبیه اینه که 50 تا شاگرد توی کلاس یا معلم میگه نواخت و همه درس میگه اما دو تا شاگرد کاری میکنه معلم میگه این دو تا شاگردم با بقیه فرق داری اینا رو جدا میکنه میبره تو جلسه خصوصی اون 48 تا دیگه شاگرد که هستن 45 تاشون عین خیالشون نیست سه تاشون چی میگن اون چلو پنجت میگن خدا رو شوت ماره نبود زحمت بیشتر به ما بده و همین اندازه از ما تکلیف میخواد بس مونه اما ستایی دیگه معنا رو فهمیدن هی گریه میکنن هی عشمه هی به دامن استاد میچستن تو رو خدا ما سنفرم ببر اون دو نفری که خصوصی ها قرار دادی امام سجاد داره به ما یاد میده شب در و شب ناله این چنانیه خدایا تو بندگان خاص داری نامه ای به من دادن که اینقدر الهی الاف الهی الاف, الاف میگن اینو کسانی باید بگن که گناه کردن من که گناه نکردم الهی الاف بگم اولا اگه گناه نکردی خوشا با حالت که خودتو در این حد میبینی که گناه نکردی انشاءالله گناه نکردی بندن برپرز قبول کنم اما میدونید با این الاف ها میخوای پله بالاتر رو تهی کنی این گریه را این سطح شاگرد داره میکنه آی معلم منو رو ببر تو اون کلاسه اون حرفای کنجا میزنی من اونا رو هم بشنوم. امام سجاد داره در این مناجات رو به ما یاد میده اون وقت این خدا حالا این محسل خیلی دلم میخواست فرازهای دیگر هم بخونم یکی که دیگر رو میرم قسمت آخر یا منا قلوب المشتاقین ای آرزوی دلهای مشتاقین و یا قایت آمال المحبین ای سرانجام آرزوی دوست دارم یک صفه قرده رد شده ما اومدم آخرش از که از تو میخوام چی؟ خونه بزرگ پول بیشتر لباس زیباتر حتی عمر طولانیتر فقط برای این که بیشتر بخورم بیشتر بنوشم یا امام سجاد میگه از که حب بکه حب به تو میخوام و حب منی و حب و حب به اون کسانی که تو را دوست می و حب به کل عمل یوسلونی الا قربک و هر عملی که وصل می‌کنه اتصال برقرار می منو به تو اونو من دوست بدارم مثلا نماز باعث قرب من با اکران نماز نخونم نماز دوست بدارم امیشب گریمون یکیش برای اینه گریا میکنین؟ خدایا چرا من نماز دوست ندارم؟ چرا من از قرآن خوندن لذت نمیبرم؟ چطور؟ آقا چهار نفر تو مجلس میشینن؟ جوک میگن من خوشم میاد؟ لذت میبرم؟ از قرآن خوندن لذت نمیبرم وای دلم مرده؟ دلو به جک دادم دلو به قرآن ندادم قرآن برای من به اندازه جوک جذابیت نداره من تذکیه نفس ندارم نماز اینکنانی چنانی دکوری از نمازه ولی باید همونو داشته باشیم تا برسیم به اونجا وقتی به ما میگم قامت سلام بگم دعوت نامه اومد دعوت نامه اومد خدا منو پذیرو وقت ملاقات به من داد این امام سجاد علیه السلام می فرماید اصحالو که حبک و حب منی و حبک و حب کل عملن یوسلونی الا قربک و انتجعلك احب علی مما سباق که دیگه الان اون قسمتش زودی بمونه خب اجازه بدید در قرآن سریع خب این خدا که میگه دل باید جای خدا باشه در قرآن یه آیه میخونم و لذی ن آمنو اشد دوحبم لله پس مؤمن ها بیشتری خداست اما این قرآن چرا به پیغمبر میگه قول لازم آلم علیه اجران الل موت دتفل قربا شما از به خدای اینجا دقت تذکر خیلی دلم میخواد اینجا به بعد لاعقل یک ساعت بسون کردن ولی انشالله شبای بعد. همینجا رو دقت بکنید فرق مودت با محبت چیه؟ ود، حب حب است، ود هم است. اما اهل لغت میگن مودت یه مقداری حتی شدیدتر از محبته. به این معنی دوست بدارید او را دوستانش هم دوست بدارید دشمنانش را هم دشمن بدارید که امیر در نهجل ولاغه فرمود دوست شما سه کسه دشمن شما سه کسه دوست شما دوست دوست شما دشمن دشمن شما این میشه دوست شما دشمن شما دشمن شما, شما دوست دشمن شما دشمن دوست شما همه اینا به قدرهایت بشه این میشه مبده یعنی اگه بنده واقعا شما رو دوست دارم دوست شما رو با دوست دارم دشمن شما رو باش باش دوشمنی فرزن چون شما رو دوست میدارم خب خدا که در قرآن میگه المؤمنو اشد و حبن لله مؤمن حبش برای خدا پس چرا به فیغمبرش میگه بگید بیت رو مودت داشته باشن چرا نمیگه آی مردم حبه به خدا داشته باشید میخواد بگید همونه آی مردم مؤمن که باید برای خدا باشه جز از طریق معبت اهلالبیت شود. علزا امام سجاد علیه السلام هم در بازار شام اشاره به این قضیه کرد وقتی ریسمان به گردن آقا زنجیر پا رو گیر شکم شطور بسته سرها بالای نیزه زن و بچه اسیر با عنوان اسیر دارن میارن تو بازار شام جمعیت هم شادی که یه عده خارجی علیه مؤمنین یزید قیام کرده کشته شدن زن و بچهش اسیر یه فردی میگه آخ آدم یه کمی هم فکرشو بذار به کار یه کمی نگاه کردید اینا نمیخوره به آدم بعد اومد جلو امام سجاد علیه السلام شما کی هستید دعوای شما با اسلام و قرآن چی بوده امام سجاد فرمودن پیره مرد قرآن خونده ای ها قرآن که مال امام مسلمان شما چه سوال میکنی؟ فرمود علیه قرآن خونده ای بله قرآن خونده ای آیه رو در قرآن خونده ای قل لا اسألكم علیه اجرن الا المبدت سلغربا خب بله این آرزو اهل بیت پیغمبره قرب خدا این حسره حسین پسر پیغمبره منم علی ابن الحسینم این زینب دختر زهراست تیرمرد داد کشید تو بازار شام آی مردم کلا سرتون گذشتن همونجا درجا پیرمرد رو کشته حالا خدایی که میگه دو حبن الله به پیغمبرش میگه بگو مبدت اهل بیت خدا از قرآن فرستادن چی میخواد؟ از پیغمبر فرستادن چی میخواد؟ خوب دقت کنید من از قرآن میگم هر کس این روال آیات رو دقت کنه مولادرزش از نظر سیستم منطقی نمیره شکل اول قیاس منطقی میتونیم تنظیم بدیم این چند آیه رو که من ارز میکنم ولی سریع رد میشم خدا پیغمبران رو برای چی فرستاده؟ و ما ارسلنا که من رسول الا نوهی علی آنها فاقدون و ما ارسالنا من قبل من رسول آیه اینه و ما ارسالنا من قبل رسول ای پیغمبر هیچ رسولی نفرستادم قبل از تو و خود پیغمبر همین کلامی میگی نوهی لای دوم پیغمبر وحی کردیم که چی خار بکنه که به مردم بگه نخو لاله لاله آنها غیر از من کسی نیستم عبد منش انبیا اومدن اینو بگه خود پیغمبر اسلام اننا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نزیرا و دائین الالله به ازنهی دائین الالله خب پیغمبر اومده مردم رو الالله بخونه پس چرا میگه مبدتن فلغربا پس مبدت فلغربا مال الالله شما در ریاضی بگید علف مساویه به به مساویه جیم پس علف مساویه جیم باید باشه دیگه چطور همه جا این ویوال منطق درسته سغرا کبرا نتیجه اینجا میرسه اینجا نه اینجا چرا اینجا میخواد حب به بیت رو کنه که استدلالشو مفصل بعد عرض کنم اونا دیدن بیت مظهر خدا هستن چون مظهر خدا هستن کسی که سراغ اونها بره حبی که نسبت به اونها پیدا میکنه مثل حب خدا میشه این انسان دیگه دل به هیچی دیگه نمیده اومدن گفتن آقا سرچشمه رو خراب کنی گفتن چی کار گو اهل البیت تو مردم بکوبید که محبت به اهلالبیت پیدا نکنن لذا اومدن گفتن علی نماز نمیخون علی نماز نمیخون بلاخره خب مردم نماز رو دوست برن دیگه وقتی خبر به شام میرسه آقا علی تو محاب عبادت شهید شد که علی تو مسجد چه کار میکرده؟ سر عبی الله رو که میارن میگن خارجی چرا؟ چون میدونن اگه مردم حب به اینا پیدا کنن چجوری میشه من از تفسیر فخر رازی براتون بخونم یه مطلبی رو که عین این مطلب در جلد چهل کتاب بحرول انوار هست ولی در اینجا مفصل فخر رازی در اینجا مختصرش آورده همون مختصر رو که فخر رازی آورده جالبه فخر رازی کیه؟ یکی از های دنیای احل سنت که از نظر تفسیری و کلامی در دنیای اهل سنت از این فخر راضی ملاتر شما ندارید اینقدر تعصب بر علیه شیعه داره که در بسیاری از همین کتاب که گاهی به مناسبت من آوردم در جلدهای دیگرش برای شما خوندم هر جا به کلمه شیعه میرسه شیعه که نمیگه رافضی میگه بعد میگه لعنه الله مرتب لعنم میکنه عجیب لجوازی داره این جلد 21 و 22 تفسیرش که در یک مجلده در جلد 21 در تفسیر این آیه شریفه سوره کهف ام حساب تا ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو من آیاتنا عجب راجب شگفتی اصحاب کهف داره تفسیر میکنه مپسل میگه از این شگفتی ها ما در دنیای دین زیاد داریم چیزای عجیب و غریبی داریم بعد میرسه به کراماتی که بزرگان دارن میرسه به این جمله میگه و اما علی کرم الله و وجهه اما علی که او دیگه علیه السلام مثل ما نمیگه اون تحبیر رو کار میبره روایت شده انا واحدا من محبیه یکی از دوستان علی فخر راضی می نویسد صفحه هشتاد جلد بیست از مجلد بیست و یک و بیست و دو با هم دیگه خیلی نقطه زریفه روایت شد ان واحدا من محبیه سرق و کان عبدن اسود یکی از دوستاران علی دزبی کن یه هم بود سیاه وعثبه الى علي فقال له اثرقت اینو آورده تشا علی, علی به غلام گفت دزدی کردی قال نعم گفت بله فقت يده علی دستشو رو قطع کرد حد دستش رو برید چون شراایتی داشته که باید حد اجرا شده اینجا مفصل داره حالا شبای دیگه انشالله مفصلشو میخونم برای دوستان فقت يده دست رو برید وان سراتم من عند علي جنالی حسنا از پیش علی علیه السلام رفت که رو علی بریده سلقاه سلمان الفارسی سلمان فارسی و ابن الکوه این دوتا او رو دیدن ملاقاتش کردن سقال ابن الکوه من غطع یدک کی دست برید؟ ابن کوا در منابع ما داره ظاهران از این جمله غصب سوئی داشته غصبش این بوده تو اینقدر دم از علی میزن علی رو هم دوست داری. محبه علی هستی حالا دیدی مثلا خواست کنایه بزنه های کی دستو برید کی دستو قرد کرد فقال ابن الكوا من قطع ایدک کی دستو قرد کرد فقال این غلام سیاهی که دزدی کرده قال گفت امیر المؤمنی و یعصوب المسلمی و زوج البتول فقال قطع ایدک دست تو قطع کرده و تو داری مدحش میکنی کی فقاله و لهلا چطور من مدحش نکنم؟ فقط قطیددی به حق او حق داشت دست منو ببره. من بد کردم همین اینجا که دقت بفرمایید محبت چه میکنه؟ چون دوست داره علی رو علی تو دلشه میدونه که حق با علی دستش خوریده. میگه باشه من بد کردم. او حق داره دست منو ببره آشورا سمبول این اشقبازی و محبت این که امام حسین علیه السلام خطاب به اصحاب ابی عبدالله میگه اصحابی مثل اصحاب شما نیست شما وظیفه دارید در زیارت اصحاب بگید السلام علیکم یا انصار دین الله و عبدالله عبدالله ود ای کسانی که به اون مقام دوستی رسیده بودید هنوزم که هنوزه شما وقتی تو حرم عبی عبدالله میرید نه تو حرم جناب هر چقدر فاصله داره با حرم عبی عبدالله همونجا میرین شما رو به خدا عشق از این ذریع میجوشه میاد بالا یا نه داره نشون میده یعنی کار به اینجا میرسه مادره دل داده شد یه چیز دیگره سر چشمه رو درست کنیم اون جیوه رو بذاریم که آلودگیار رو بریزی مادر نشسته در خیمه امه پسر جوون چند ساله رفته جنگیده سرش بریدن پرتاب کردن به طرف خیمه های مادر در خیمه نشسته افتاد تو دامن مادر این ورداش نگاهی کرد سرش رو به طرف دشمن گفت ما سری را که در راه خدا داده این پس نمیگیریم. به این دل به حسین لذا نمیگه حسین جان پسر جوون منم رفت شمشیر می داره میاد بیرون انا عجوز و سیدی ضعیف ها می اون رجز کذایی اون چنانی رو مطرح میکنه و میره جلو این دل داده شده وقتی دل داده شده عمل به گونه دیگه میشه ایستاده جلو بی عبدالله روز آشورا تیر از هر طرف میاد با آغوش باز این تیرا رو می‌خره می‌خره می‌خره وقتی نماز بی عبدالله تموم شد استاد زمین داره جون می‌ده حبیب ابن مظاهر اومده بالا سرش سرش گذشته تو دامن میگه رفیق خوشا به حالت که دلی شربت شهادت مینوشی من بعد از تو باقی نیستم اگه باقی بودم میگفتم به من وصیت کن نذا دارم میام کو چشمش رو زحمتی باز کرد گفت نه وصیت دارم گفت وصیت چیه با انگشتش و زحمت به سوی بی اشاره کرد گفت اوسی کن به هازل به الغریب شما رو به این تنها واسیت میکنن شما رو به این تنها واسیت میکنم شب آشورا وقتی عوی عبدالله میگه برید این مردم با من کار دارن وجود مقدسه قمر بنی هاشم حسابش تو توی فله دیگریه اما جناب مسلم ابن اوسجه جناب زهیر ابن قین جوان دلت رو بده به علی و آل علی ببین چه میکنه آقا میشی خواهر ارزنده میشی دنیا رو بازیچه حساب نمیکنی، کنی چار تکبیر میزنی یک سره بر هر چه که هست عوی عبدالله میگه بری میگه آقا کجا برم از پیش شما به خدا آقا هم اگر هزار بار مرا بکشند و زنده کنند دست از تو بر نمیدارم. وال اینکه یه بار که بیشتر نمیکشن لذا هر کس هم که داشت جان میداد صحنه عشق واضیه کربلا صحنه السلام علیکم یا انصار دین الله وعه داعه آنانی که معنی مودت اهل بیت رو فهمیده بودم خدام چه مقامی به اینا داد امشب این دارید مقام واقعی کسب کنید از بعد از عاشورا تمام امامان و هزار خردی سال امام زمان شاید هر روز یک بار حداقل به اینها میگه السلام علیکم یا انصار دین الله و اوداعه شما رو به خدا سرمایه چی آقا رشد نفس نفسمون رو تعالی بدیم به بچه ده سال با اسباب بازی دل خوش میکنه به سن من و شما که میرسه میخنده شما به سن نمیرسید به گذشته زندگیتون بیا از جوانی دلت رو بده به علی دلت رو بده به مهدی علی دلت رو بده به امام زمان لذا گفتن شب 23 که احتمال داره بیشتر شب قدر باشه گفتن زیاد حالا ان شاء الله بعد می این دعای اللهم کن له کل ک الحجت ابن حسن زیاد امشب بخونید که یکی از اعمال امشب اینه که این این مرتب بخونید یعنی چی یعنی شب آشتی با خداست آشتی با خدا این یعنی دست در تو دست مامزمان زمان با امام زمان که دست دادی بیعت کردی مسی که با خدا آشتی کردی فرقه تو نماینده یوس خلیفه یوس از طرف اون صاحب اختیار کل هستی سفر اولی که مکه مشرف میدم می شدم خیلی کم سن سال بودم و بچه از حالا خدا یشبی آمرزد یه استاد بزرگی بود خدمتش رسیدم به ایشون گفتم که به من مععزه کن چه کار کنم این جمله رو بد میگم سالها صوت کرده خدا یشبی آمرزد ایشون فرمودن که میگن حاجی را خدا دعوت کرده رضا شما وقتی میگید لبه دعوت کرده میگی کشم اومدم خب هر کسی که کسی رو دعوت کنه میزبان معمولا پذیرایی میکنه بیت بیت خداست. اهل هم. امروز نماینده خدا که باید مهموناش پذیرایی کنه کیه؟ امام زمان علیه السلام. لذا بر امام زمان تکلیف کرده خدا هر سال ایام حج تو در مکه باشه اینجوری حج بکن که واقعا حس کنی داری وارد بر امام اص علیه السلام میشی به طواف کعبه رفتم. به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آی کعب نشان است که ره گم نشود حاجی احرام دگر دگربن ببین یار کجاست خب ادامه شده بخونم دیگه داره دیر میشه اجازه بدید سخر راضی داره این ویسا شوخی نیست حالا میگه بهش گفتن تو داری معد میکنی گفت چطور معد نکنم و قد رت بحق و من نار حدو در حق من اجرا کرد تا منو از آتش نجات بده یعنی اینجا منو مجازات کرد منو دوست داشت اینجا مجازات کرد که فردای قیامت من مجازات نشم فسم از سلمان اینجا بیشتر نمیگه اما در اینجا میگه وسو مولا کرد قربون مولایی دارم که حق وقتی میخواد اجرا کنه دوست و دشمن نمیشناسه که از جلد چهل این کتاب فرداشتب اینشالله براتون میخونم میگه سلمان تا اینو شنید سلمان فسامه از سلمان زالکه و اخبردهی علی ان. سلمان زودی اومد پیش علی و علی گفت که علی جان ای قلام سیاهه با دست ای که خونی چکه داره مده تو سر میده بعد ما یه حاجت میخواییم به ما نمیدن غر میکنیم بذاریم اینم بگم دلا آماده بشه برای دعا همین ادامه داره بخونم علمای نجف این قضیه توشون معروفه زمان مرحوم شیخ انصاری رئیس حوزه یه طلبه مشکلاتی پیدا کرد اومد رفت حرم از طبلفض علیه السلام متوصل شد از طبلفض آقا مشکل دارم حاجت منو بس. من از نجفم اومدم اینجا پیش شما شما رو واسطه کنم پیش باباد علی حاجت منو بدید همین بین که مشغول بود دید یه جوونه که فلجی که نه زبون داره حرف بزنه نه گوش میشنوه نه دست و پا فلجه به تمام معنا یه <تصحیح> عده عرب هل هل کنن اینو آوردن تو حرم از تبلفذ گذاشتم گفتن یا ولفذ رئیس قبیله ما مرده این پسر رئیس قبیله است اگه اینو شفا ما رئیس قبیله نداریم اینو واسه شفا بدید و من همینجور که ذکر میگفتم خوابم برد و وقتی چورکی بر من قلبه کرد یه وقتی دم حضرت ابوالفضل علیه السلام انایتی کرد قذایاش طولانی نگم جوان شفا پیدا کرد تا چشوا کردم میگم شلوغه میگم جوون داره راه میره من دلم شکست قهر کردم گفتم من طلبه دارم درس دینی میخونم این همه خدمت به شما میخوام بکنم این همه ناله زدم به من ندادید یه جوون فلج مال یه قبیله ای رو زود شفا دادید قهر کردم گفتم میرم نجف و جمع میکنم دیگه از این درس و بحث و اینام جنب میگردم میرم شهرها گفت با حرم امام حسینم دیگه نرفتم قهر کرد وارد نجف شدم تو دروازه نجف یه خادمی شیخ انصاری داشت اومد جلو گفت فلانی گفتم بله گفت من خادم شیخ انصاری‌ام شیخ با شما کار داره گفتم برو من با شیخ کاری ندارم من دیگه با هیچ کدومتون کاری ندارم گفت آقا شیخ منو معمول کرده با شما کاری داره گفت آقا کاری ندارم بلم کن گو اگه به خوبی اومدی و نیومدی من مأمورم تو رو ببرم به زور میبرمه خب حریفش نشدم اخما تو چشممه سلام انداختم پایین با قهری دست و منه گرفت رفتیم تو اتاق شیخ انصاریش همه برن بیرون تنها شدیم گعده طلب فلص فرمودن سه هاجت خواستی اولیش تا هفته دیگه داده میشه دومیش تا ماه دیگه داده میشه سومی به صلاحت نیست اصرار نکن اما از ما قهرم نکن جوونا قهر نکنید با خدا بزرگترا من به شما جسارت نمیکنم به جوونا میگم جوونا از خدا قهر نکنید از امام زمان قهر نکنید بگیرید امشب دامن امام زمانو آشتی کنید با امام زمان اول چیزی که امشب از امام زمان میخواید آقا یه غلاده به گردن ما بنداز به خودت نگهدار نگذار من جای دیگه برم اگه جای دیگه برم من ضرر کردم شما ضرر نکردی این امشب بگیریم از اینا لذا این جوان سیاه قهر نکرد دست داره خون میچکه اما داره دم از علی میزنه هر فخر راضی داره مینویشه برادر و خواهر. سلمان تا اینو گفت فده الاسود امیر المؤمنین فرمود اسودو بگید بیاد فوضعه یدهو علا سائده حضرت دست بریده رو برداشت گذاشت به این مچ بریده شده و قطاع به مندیل یه دستمال روش گذاشت و دعا به دعواتن و دست به آسمان برداشت دعاهای خون فتسمعنا سوتن من سما این داره میگه سلمان گفت وقتی علی دست بریده رو گذاشت رو مچ پارچه هم روش گذاشت خودش هم داره خدا رو میخانه ما شنیدیم یک استدایی و از آسمان این پارچه رو از دست بردارید و رفعناه و پارچه رو برداشتیم فعزل بعد دیدیم دست سالم سر جاشه علی جان دستشو بریدی اما از تو جدا نشد تو بهش دادی ما امشب می‌خوایم بگیم از تو جدا نمی‌خوایم بشیم دل سیاه ما را علی امشب شفا بده دست بریده او رو سر جاش برگردندی خلب ما را امشب نورانی کن اما برای اینکه این علی رو از مردم بگیرن از گذشته امروزم برادرها کارایی دارن میکنن منو تو رو از علی جدا کنن جدا رو، اومدن چکار کردن گفتن هر کسی که تو خونش اسم علیه خونه رو رو سرش خراب کنید هر کسی اسمش علیه سهمیه المال رو قطع کنید هر کسی دم از علی میزنه از ایدش کنید این شعرم چون در ارتباط با حبه بذارید براتون بخونم دیگه بریم انشاالله در خانه امیر و و در خانه خدا و امام زمان امشب خیلی مهمه آقایون خانو ما بگیرید امشب. بر روحی یک سال امشب باید تهیه کنید. دیدید معمولا زمستان سردی که در پیش سوخت و ذخیره میکنن. قضاها رو ذخیره میکنن ما گردنهای خطرناک لغزش شیطانی در پیش داریم سوخت قلبمون رو امشب باید بگیریم انرژی دلمونو رو امشب باید ذخیره کنیم این باتری جانمونو رو امشب انشالله باید اونچنان شارژ کنیم که با یک استارت حرکت کنه به سوی علی و آل علی و امام زمان و فاطمه زهرا خواهر دل تو بده به زهرا لذا بیا خلاف نکن خواهر میدونی اگر شوهر دارید غلط باشه دل امام زمانه شکستی برادر میدونی اگه زن دارید غلط باشه دل امام زمانو شکستی جوان میدونی اگه دل پدر مادرتو شکستی دل امام زمان رو شکستی حاج آقای بازار میدونی اگر رشوه گرفتیس ربا گرفتی تو اداره رشوه گرفتید معلم سر کلاس شما کم فروشی در علم کردید و و, و, و قلب امام زمان رو شکستید بیاییم امشب اینو در خودمون ایجاد کنیم اومدن گفتن هر شاعری که دم از علی زد تبعیدش کنید یه وقت کمهی تو دیدن یه چوبهی گذاشته رو دوشش تو کوچه های کوفه میره شعر میخونه راجع به علی آقا این شعر بایی چوب چیه گفت چوبه اعدامم رو بذاشتم روی شعر شعر میخونم هر جا میخوان این چوبه بکارن منو ببرن بالا عاشق مگه میتونه از معشو اینو دشمن فهمیده میخواد از من تو بگیره دلمونو چیز دیگه توش بریزه اما این دل وقتی او رفت دیگه چیز دیگه رو جا نمیده اون یکی رو برداشت تبعید کرد از تبعیدگاه این شعر و سرود فرستاد شر دوبی اندم تداهی علی یا. ز رأو زاو کفی داوند ویا، ربي ما ابراه الدهر حتى سخلي مجتی به حب عليا، حب دينن، لا حب دنيا و شرال حب حب نيكن لي دنيويا، صوغن لا، فزوع به منهم لا زميمن ولا لا زميمن ولا خدایا خدايامنو آواري کردن. خیال کردن که دیگه تاییدم کردن خسته میشم دست از مولانا برمیدارم به خدا قسم روزگار سفری نمیشه مگر اینکه ببینه من دارم همون جور دم از علی میزنم چرا که علی رو دوست دارم برای دینم نه برای دنیام بدترین حب حبیست حب که جنبه دنیوی داشته باشه ساغنه لا فز عابد منهم ای خدا منو ذوب کن در قالب دوستداران علی قرار بده تا ببینن من ادعا نمی کنم راست میگم لذا دوستان علی وقتی که میسم تمار رو علی گفت به ای چوبه بالاد میکنن دستتو میبرند میبرن پا تو میبرن زبانت میبرن گو آقا جون در حالی که دینم سالمه باقی میمونم روح به شما گو بله گفت به منتظر اون روزم لذا می دیدن روزا میامد میسم تمار ای درخت های نگاه میکرد نوازش میکرد شعر میخوند میسم دیوونی شدی گفت دار عشق منه به عشق مولام میخواین من دار بالا کنم حجر ابن علی را با پسر و برادر و یارانش آوردن توی مزرعه ازرا اینو دشمن میترسه که اگر حب علی و آل علی شد کار به اینجا میرسه کاغذ سفید امزاشده معاویه رو دادن به دست حج هر پسی میخوای انتخاب کن امضا شده به یک شرط به علی دشنام بده من سرم رو بگیری اول پسرم رو بکشید بد منو چرا اول پسر رو؟ آخه من سنم گذشته داغ پسر ببینم برنی گردم ولی اگر پسرم جوونه ببینه اول منو گردن زدید. میترسم ترسم بترسه او سب بلعن علی کنه این ننگو من چکار کنم پسر گفت بابا جان منم میخوام اول منو گردن بزنم. اما مطمئن باش من وای میستم سر پسر رو جلو بابا گردن زدن سر بریده رو دادن به هج هج برداشتیه لب زد گفت بابا جون پیش زهرا. خوش روسفید سفید باشی منو پیش علی روسفید کردی این عشق در تاریخ مذهب رو نگه داشت این دلدادگی مکتب رو نگه داشت امشبم دل بدیم به علی و حال علی تا در تاریخ بگوییم سپاه صحابه تو مسلسل میبندی شیعه ها را اون شیعه یک عمر دعا میکند تا به عشق علی خونش به کفنش دل شینت. تو گرسمه را از قضا می ترسانی؟ تشمه را از آب می ترسانی؟ آشق را از لغای معشوق فراری می دی؟ ما که را در دل داریم شب و روز نهره من این است در زیارت آشورا یا لی کنا مکم و عفوزه فوزن از ایما بکشید شیعه را ولی خون شیعه میجوشد و عاشق علی را در گوشه و کنار بگونه ای که به چشم دشمنان علی اولین کلمه ای که بچه شیعه به زبان می آورد یا علی اما این علی چقدر مظلوم اما این علی چقدر مظلوم علی مرتب میرفت سراغ بچه یتیما تو خرابه ها. این شبها ها یتیما ناله می زدن می این شب من از یتیمه خرابه نشین خود علی براتون بکن رو سه ساله چون امشب؟ یتیما همه تو خرابه ها سر به دیوار گذاشتن دیگه اونغر علی مظلومه که سه ساله به عبدالله رو غیه. یه نقل اینه من بگم دیگه شما رو به پیز روزه برسونم آماده بشیم برای مناجات سرها رو به نیزه زده بودن خرابه به جایی میگن که سقف نداره دیوار داره که اینا نتونن فرار کنن سقف نداره هم آفتاب به تابه هم اگه بارون شد بارون به اینها اصابت کنه معمور دم در مشسته دستور دادن رو که به نیزه زدن این نیزه رو به دیوار خرابه تکیه بدن این زن و بچه ای که توی خرابه اند چشماشون به این سرابی یک یه شب خب یزید حوست کرد دستور داد امشب سر امام حسینم به نیزه بزنید ببره یه نقل اینه سر عبی عبدالله رو به نیزه زدن آوردن. وقتی که نگهوان میگه خیلی هم به ما سفارش کردن موازه به زر باشید که هیچ سر رو یه وقت نبرن نگهوان میگه من دیدم وقتی این نیزه رو آوردم به دیوار تکیه دادم سر به طرف خرابه یه دختر خورسالی هی پابرچین پابرچین میاد نزدیک من یه نگاه به این نیزه رو سر میندازه. میبینه چشم من بازه میترسه ترار میکنه میره تو من تصمیم گرفتم خودم و به خواب بزنم ببینم این دختر چه میکنه چشمامو بستم دختر خیال که من خوابم پا برچین پا برچین اومد نزدیک من که رشید این نیزه رو به زحمت خوابان. سر از نیزه در آورد به سینه شسوم دوان دوان رفت و خرابه گفم به جان بابام امشب اومده چیزی نگذاش. یه وقت دیدم زینب آمد در خرابه گفم یه اصاله خبر کنید ما میخوانم امشب این بچه رو به خاک بسوریم علی رو شب به خاک شپرده زهرا رو شب به خاک شپرده امام حسین بدنش رو خاک کربلا بلا گذاشته ای دخترم باید شب به خاک بسورم قفصاله آمد لباس از بدن روغه کم که بدن رو گفت بده گفت بزرگ شما کیه؟ زینب رو نشون دادن گفتن تا نگیر بچه به چه مرض مرده گفت نمیدم گفت چطور؟ گفت تمام بدن این بچه کبوده